شاهدان گر دلبری زین سن کنند زاهدان را رخنه در ایمان کنند هر کجا آن شاخ نرگس بشکفت گل رخانش دیده نرگستان کنند ای جوان سر قد گوی ببر پیش از آن که از غامتت چوگان کنند آشغان را بر سر خود حکم نیست هر چه فرمان تو باشد آن کنند پیش چشمم کمتر است از قطری این حکایت ها که از توفند کنند یار ما چون گیرد آغاز سما قدسیان بر عشد دستفشان کنند یار ما چون گیرد آغاز سما قدسیان بر عرش دست افشان کنند مردم چشمم به خون آغشت شد در کجا این زول بر انسان کنند خوش برا با غصه ای دل کهل راز عیش خوش در بوته یه هجران کنند خوش برا با غصه ای دل کهل راز عیش خوش در بوته هجران کنند سر مکش حافظ آه نیم شب تا چو صبحت آینه رخشان کنند